مکالمهی در باران نورا نوزده سال پیش هزان که تصمیم به مردن بگیرد در گرمای کتابخانه خانه کچک مدرسه ی در شهر بیتفورد پشت میز کتاهی نشسته بود و خیره به صفحه شترنج نگاه میکرد چشمان خانم علم کتابدار کتاب برقی زد و گفت نورا عزیزم طبیعی که راجب آیندد نگران باشی خانم علم نخستین حرکتش را انجام داد. اسبی از روی ردیف مرتب سربازان پیاده سفید رنگ پرید. معلومه که به خاطر امتحانهاد نگران میشی. اما میتونی هر چیزی که دلت بخواد او نورا به احتمالات ممکن فکر کن. ها جان انگیزه؟ آره، فکر کنم همینطوره. تمام عمرت هنوز پیش روته. تمام عمره. میتونی هر کاری بکنی هر جایی زندگی کنی مثلا جایی که مثل اینجا اینقدر سرد و مرتوب نباشه نورا بحره سرباز را دو خانه جلو برد سخت بود خانم علم را با مادرش مقایسه نکند مادری که با نورا جوری رفتار میکرد که گویی اشتباهی بود که نیاز به تصیح شدن داشت برای مثال در دوران نوزادی نورا مادرش نگران این بود که گوش چپ او بیشتر از گوش راستش بیرون زده و برای برطرف کردن مشکل به چسب نواری رو آورد و بعد آن را با کلاهی پشمی پوشاند خانم علم برای تاکده بیشتر اضافه کرد از سرما و روت متنفرم خانم علم موی خاک سریه کوتاه و چهرهی بیزی شکل مهربان رنگ پریده و نسبتاً چروکیده ای داشت که بالای لباس یاقیسی سبز لاک پشتیش خود نمایی می کرد. سن نسبتا زیادی داشت، اما نورا همچنان در تمام مدرسه با او بیشتر از همه احساس هم فکری می کرد. حتی روزهایی هم که باران نمی آمد، زنگ تفریح بعد از ظهرش را در کتابخانه کوچک می گذراند. نورا به او گفت: سرما و بعد، همیشهم با همدیگه همراه نیستن. جنوبگان خوشترین قاره ی روی زمینه. عملاً مثل سهره است. خب، فکر کنم باب خودت باشه. به نظر من که به اندازه کافی دور نیست. خب، شاید بتونی فضانورد بشی. میتونی توی کهکشان سفر کنی. دورا لبخند زد. بارون دو سیگره دیگه از اینجا هم بدتره. از بدفورد شایر بدتر؟ توی سعیره زهره از اسید خالصه. خانم علم دستمال کاغذی از آستینش بیرون کشید. و با در آن فین کرد. میبینی با این مخی که تو داری هر کاری میتونی بکنی. پسرک موبوری که نورا میدانست چند سالی از خودش کوچکتر است دوان دوان از پشت پنجری باران زده گذشت. یا دنبال کسی بود یا کسی دنبالش میدوید. نورا از وقتی برادرش رفته بود بیرون که میرفت احساس بی پناهی می کرد کتابخانه برایش مثل پناهگاهی کوچک از جنس تمدن بود بابا میگه همه چیزا حروم کردم حالا هم که دیگه دست از شره کردن برداشتم خب راستش دوست ندارم این حرفو بزنم ولی به سری شنا کردن کارهای دیگه هم تو این دنیا هست امکان زندگی های متفاوت و زیادی پیش روته. همینطور که هفته پیش گفتم میتونی یخچال شناس بشی یه مقدار دربارش تحقیق کردم و فهمیدم همان موقع بود که تلفن زنگ خورد خانم علم با مهربانی گفت یه لحظه بهتری جواب بدم چند لحظه بعد نورا خانم علم را حین پاسخ دادن به تلفن تماشا میکرد آره الان اینجاست صورت کتابدار از سر قافلگیری ول شد. رویش را از نورا برگرداند. اما صدایش در اتاق ساکت به خوبی به گوش می رسید. وای، نه، نه، خدای من، البته، 19 سال بعد مرد پشت در نوراسید 27 ساعت پیش از اینکه که تصمیم به مردن بگیرد روی مبل زهوار در رفتش نشسته بود و تصاویر زندگی های شاد دیگران را نگاه می کرد و منتظر بود تا اتفاقی رخ دهد ده بعد کاملا ناگهانی واقعا اتفاقی افتاد یک نفر به هر دلیلی زنگ در خانهش را زد نورا چند لحظه به این فکر کرد که اصلا در را باز نکند. به هر حال با اینکه تازه ساعت نوه شب بود، دیگر لباس خوابش را پوشیده بود. از تیشرت گل و که رویش نوشته شده بود، دیدبان محیط زیست و شلوار پیژامه چهارخانهاش خجالت می کشید. دمپایی هایش را با کرد تا اندکی متمددن تر به نظر برسد. بعد در را باز کرد و متوجه شد مرد پشت در را می شناسد مرد قد بلند و لاغر بود و چهره مهربان و ای داشت. چشمانش تیز و فرز بودند، انگار که میتوانست آن سوی چیزها را ببیند. دیدنش کمی قافل گیر کننده اما لذت بخش بود، مخصوصاً که لباس ورزش به داشت و با وجود هوای سرد و بارانی به نظر میامد گرمش هست و عرق کرده. ایستادنشان کنار هم باعث شد نورا حتی از پنج ثانیه پیش هم بیشتر احساس شلختگی کند. اما نورا احساس تنهایی می کرد. آنقدر در فلسفه اگزیستان سیالیس مطالعه کرده بود که تنهایی را بخشی بنیادین از صرف انسان بودن در جهانی اصولاً بیمعنا بداند. با این حال از دیدن او خوشحال بود. در حالی که لبخند می زد گفت اش اسمت اش دیگه. اش اسمت عشق دیگه درسته؟ آره درسته اینجا چی کار میکنی؟ از دیدنت خوشحال شده؟ چند هفته پیش که نورا پشت پیانوی الکتریکیش نشسته بود و آهنگی مینواخت نواخت عشق او راهین دویدن در بلوار بنکرافت از پشت پنجره در همین ساختمان آسی و دیده و برایش دست تکان داده بود زمانی سالها پیش نورا را به نوشیدن قهوه دعوت کرده بود شاید دوباره میخواست همین کار را بکند اش گفت: منم از دیدنت خوشحالم اما ابروهای درهم در هم فرو رففتاش که خوشحالش را نشان نمیدادند هر بار که نورا در مغازه با او حرف میزد ااش کاملا بی خیال به نظر می رسید اما حالا غمی در صدایش بود اش پیشانیش را خاراند و صدای دیگر از گلویش خارج شد اما نتوانست یک کلمه کامل بسازد و به زبان بیاورد. دشتی میدویدی؟ سوال بی معناهی بود مشخصاً اش برای دویدن از خانه خارج شده بود اما به نظر رسید یک لحظه به خاطر اینکه می توانست حرفهای عادی بزند آرام شد. آره میخوام توی نیمه ماراتون بدفورد شرکت کنم یک شنبه آینده است. آهان آره عالیه منم توی فکرش بودم؟ آهان آره عالیه منم تو فکرش بودم که توی یه نیمه ماراتون شرکت کنم. بعد یادم اومد که از دویدن مترفرم. این حرف پیش خودش خیلی خنده دارتر از چیزی بود که بعد از به زبان آمدن به نظر رسید. نورا هم اصلا از دویدن بدش نمی آمد. اما به هر حال از دیدن حالت جدی چهره اش نگران شده بود. سکوت میانشان از آنچه بود هم تر شد. اش سرانجام گفت. بهم گفتی یه گربه داشتی؟ آره یه گربه دارم. اسمشو یادم بود ولتر مونارنجی و خط داره درسته؟ آره ولت صدش میکنم اسم ولتر به نظرش خیلی پرتکلف و ساختگیه و اینطوری که پیداست خیلی هم از فلسفه و ادبیات قرن هجده فرانسه خوشش نمیاد خیلی متوازه البته خوب تا جایی که یک گربه میتونه متوازه باشه اش به دنپایی های نورا خیره شد متاسفانه فکر کنم مرده چی؟ خیلی بی حرکت که جاده افتاده اسمش اسمشو روی قلدهش دیدم فکر کنم یه ماشین زده بهش متاسفم نورا نورا آنقدر از تغییر ناگهانی احساساتش در همان یک لحظه ترسید که همانطور به لبخند زدن ادامه داد انگار فکر میکرد لبخندش میتواند او را در همان دنیای قدیمی نگه دارد دنیایی که در آن ولز هنوز زنده بود و مردی که نورا قبلاً چند کتاب آهنگ گیتار به او فروخته بود، به دلیلی دیگر زنگ در خانهش را به صدا درآورده بود. نورا به خاطر آورد که اش جراح است. آن هم نه جراح دامپزشک، بلکه جراح آدم ها. اگر او میگفت چیزی مرده، به احتمال خیلی زیاد آن چیز واقعاً مرده بود. خیلی متاسفم، حس آشنای غم به نورا دست داد اما سرترالین توی بدنش نمیگذاشت گریه کند. وای خدا. وای خدا. در حالی که به سختی نفس میکشید، روی صفحه های سیمانی خیس و ترک خوردی کف بلوار بنکرافت قدم گذاشته. و گربه نارنجی رنگ بیچاره را دید که روی آسفالت خیس از باران کنار جدول افتاده بود. سرش به کنار جدول پیاد رو حسیده بود و پاهایش را کاملا عقب کشیده بود. انگار داشت پرندی خیالی را دنبال میکرد و به هوا می پرید. وای وولز، نه خدای من میدانست که باید برای گربه عزیزش احساس دلسوزی و غم بکند و واقعا هم چنین احساسی داشت اما باید حقیقتی را هم اعتراف میکرد در حالی که به چهره آرام و بی حرکت ولتر نگاه میکرد و بیدردیش را میدید. احساسی اجتناب ناپذیر در عمق دلش شکل گرفت حسادت تئوری ریسمان نورا نهونیم ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد با تأخیر به شیفت کاری بعد از ظهرش در مغازه تئوری ریسمان رسید در دفتر کار کوچک و بی پنجره مغازه به نیل گفت مذرت میخوام، گربم مرد، دیشب، باید دفنش میکردم خب یکی کمکم کرد دفنش کنم اما بعدش توی خونه تنها شدم و نتونستم بخوابم یادم رفسه صبح ساعت بذارم و تا ظهر بیدار نشدم و بعدش مجبور شدم سری بیام. تمام حرفایش حقیقت داشتند. فکر میکرد ظاهرش هم مهر تعییدی بر حرفایش باشد. صورتش آرگش نداشت. موهایش را شلوول دو ماسب بسته بود و همان پیشبند مخمل کبریتی سبز رنگ دست دومی را به تن داشت که تمام هفته پوشیده بود. با یک نگاه میشد خستگی و ناامیدی را از ظاهرش خواند. نیل نگاهش را از کامپیوتر بالا آورد و روی صندلیش لم داد. کف دستهایش را روی هم گذاشت و نوک انگشت‌های اشارش را به هم دیگر چسباند. مسلسی رو به بالا تشکیل داد و بعد رأس مثلث را زیر چانه‌اش گذاشت. گویی کنفوسیوس هست و در حقایق فلسفی عمیق کیهان تفکر می کند. نه که صاحب فروشگاه لوازم موسیقی باشد و با کارمندی سر و کله بزند که دیر سر کار آمده پوسر بزرگی از فلیت بود. مک روی دیوار پشت سرش بود که گوشه راست بالایش از دیوار کنده شده و مثل گوش سگ آویزان بود ببین نورا من ازت خوشم میاد نیل آدم بیازاری بود مرد پنجا و چند ساله و آشق سینه چاک گیتاری که دوست داشت جکای بیمزه تعریف کند و آهنگهای قدیمی باب دیلن را با کیفیت نسبتاً خوبی در مغازش زنده اجرا کند. میدونم که مشکلات روحی روانی داری. همه مشکلات روحی روانی دارن. خودت میدونی منظورم چیه. نورا به دروغ گفت. در کل حالم بهتره نیازی به بستری شدن نیست دکتر گفت افسردگی موقعیتیه فقط مشکل اینجاست که پشت سر هم موقعیت های جدید واسه افسردگیم پیش میاد اما توی هیچ از این اتفاق ها مرخصی نگرفتم جز وقتی که مامانم آره جز اون موقع نیل آه کشید در حین این کار صدای سوتی از بینیش به گوش رسید یک نوت سی به مل شوم. لورا چند وقت اینجا کار میکنیم؟ خیلی خوب جواب این سال را میدانست دوازده سال و یازده ماه و سه روز کم و بیش زمان زیادیه می میکنم تو لیاقتی چیزهای بهتری رو داری دیگه نزدیک چهل سالته سی و پنج سالمه خیلی سر شلوغه. به مردم پیانو یاد میدی فقط به یه نفر نیل خورده غذایی رو از روی پولی چکاند کند. فکر می کردی توی زادگاهت بمونی و توی مغازه کار کنی. منظورم وقتیه که مثلا چهارده سالت بود. اون موقع فکر می کردی چه بشی. توی چهارده سالگی شناگر. در آن سن سریع ترین دختر کشور در شنای قرباقه و رتبه دوم سریع در شنای آزاد بود. زمانی را بیاد آورد که در مسابقات شنای قهرمانی کشوری روی سکو ایستاده بود. خب، چی شد؟ نورا قصر را سیراکوتاه کرد. فشارش خیلی زیاد بود. اما فشار ما رو می‌سازه. اولش زغال سنگ هم که باشی، با زیر فشار قرار گرفتن تبدیل به الماس می‌شی. نورا دانش او درباره ساخت الماس را تصیح نکرد نگفت با اینکه زغال سنگ و الماس هر دو از کربون ساخته شده اند زغال سنگ تر از آن است که هر فشاری را هم که تحمل کند بتواند به الماسی تبدیل شود آنطور که علم ثابت می اگر اولش زغال سنگ باشی تا آخر زغال سنگ می شاید درس درستی که باید از زندگی می همین بود چند تار رهای موهای سیاه اش را به سمت جایی برد که آن را دوم اسبی بسته بود. منظور چیه نیل؟ هیچ وقت واسه دنبال کردن رویا ها دیر نیست. تقریبا متوجه هم که واسه دنبال کردن این رویاه به خصوص دیگه دیر شده. تو آدم تحصیل کرده ای هستی نورا مدرک فلسفه داری؟ نورا به خال کوچکی روی دست چپش خیره شد. آن خال هم در تمام زندگیش همراه او همه چیز را تحمل کرده بود. فقط همانطور سر جایش مانده و اهمیتی نداده بود. مثل یک خال. اگه بخوام رستشو بگم، توی بتفورد تغازه واسه فیلسوف ها خیلی بالا نیست نیل. رفتی دانشگاه، یه سال توی لندن موندی، بعد برگشتی. انتخاب دیگه ای نداشتم. نورا نمیخواست درباره مرگ مادرش حرف بزند یا حتی درباره دن چون از نظر نیل اغب نشینی نورا از ازدواجش با دن آن هم فقط دو روز پیش از مراسم عروسی جذابترین قصه عاشقانه بعد از قصه کرت و کرتنی بود همه ما انتخاب داریم نورا یه چیزی داریم به اسم اختیار خب نه اگه با دید جبرگرایی به دنیا نگاه کنی خب چرا اینجا؟ یا باید اینجا کار میکردم یا توی پناهگاه حیوانات اینجا حقوقش بیشتر بود در زم خب با موسیقی سر و کار داشتم توی یه گروه موسیقی بودی با برادرت آره هزار تو منقدرام آینده خوبی نداشتیم برادرت که چیز دیگه ای میگه این حرفش نورا را قافل گیر کرد جو؟ تو از کجا؟ یه تقویت کننده خرید. مارشال دی ایس چهل؟ کی جمعه؟ اومدی بود بدفورد؟ آره، مگه اینکه یه تصویر بودی بوده باشه مثل توپاک؟ نورا به این فکر کرد که جو احتمالاً به دیدن راوی آمده بوده. راوی صمیمیترین دوست برادرش بود. جو گیتار زدن را کنار گذاشته و به لندن رفته بود تا شغلی در زمینه انفرماتیک پیدا کند که البته از آن متنفر بود. اما راوی همینجا توی بدفورد مانده بود. حالا توی گروه موسیقی به اسم چهار قصاب بود و در میخانه های همه جای شهر آهنگ های های دیگر را اجرامی کردند. آهان جالبه. نورا تقریبا مطمئن بود که برادرش میدانست او جمعه ها سرکار کار نمیرود دانستن این حقیقت از درون آزارش میداد من اینجا خوشحالم اما نیستی حقبانیل بود بیماری روح آزاری از درون نورا را میخورد انگار ذهنش داشت خودش را بالا میآورد نورا لبخندش را پت و منظورم اینه که از داشتن این شغل خوشحالم. خوشحال به این معنا که میدونی راضیم نیل. من به این شغل نیاز دارم. تو آدم خوبی هستی. نگران دنیایی، نگران محیط زیست و آدم های بیخانمان. من شغلم رو لازم دارم. نیل دوباره به همان جست کنفسیوسی برگشت. چیزی که لازم داری آزادیه. من آزادی نمیخوام اینجا که محسسه غیر انتفاعی نیست البته باید اعتراف کنم که کم کم داره میشه ببین نیل مشکل چیزیه که اون هفته گفتم که باید مغازه رو امروزی تر کنی؟ یه فکرهایی توی سرم دارم که چطوری جوانها رو بیاریم؟ نیل انگار که به او برخورده باشد گفت نه این مغازه فقط واسه گیتاره به اسمش دقت کن تئوری ریسمان زمینه کاریم رو گسترش دادم و جواب گرفتم. فقط مشکل اینجاست که اوضا بده و دیگه نمیتونم بهت حقوق بدم و بذارم مشتری ها رو با قیافه ی افسردت فراری بدی. چی؟ متاسفم نرا. لحظه ای مکس کرد. درست به همان اندازه که طول میکشید، تا تبری را بالا ببرد. عجبورم اخراجت کنم. زندگی یعنی سختی کشیدن نورا نه ساعت پیش از آنکه تصمیم به مردن بگیرد بیهدف در بدفورد قدم میزد. شهر در نظرش مثل خط تولید انبوه اندوه بود محووته ورزشی شهر که کفش را سیمان ریگدار کرده بودند و پدر مرحومش آنجا شنا کردنش را تماشا میکرد. رستوران رسولان مکزیکی که با دن رفته بود تا فاهیتا بخورند بیمارستانی که مادرش در آن درمان میشد. دن دیروز به او پیام داده بود. نورا دیلم برای دو تنگ شده میشه صحبت کنیم؟ از طرف دن. نورا جواب داده بود که به طرز مسخری ای سرش شلوغ است و وقت ندارد. چه خنده دار؟ با این حال به نظرش غیر ممکن بود که پیام دیگری برای دن بفرستد. نه به خاطر اینکه احساسی به او نداشته باشد. بلکه دقیقاً به خاطر اینکه هنوز دوستش داشت و نمیخواست دوباره احتمال آسیب رساندن به او را به جان بخرد زندگی دن را نابود کرده بود کمی پس از اینکه نورا عروسیشان را دو روز پیش از مراسم لغو کرد دن موقع مستی در پیامی به او نوشت زندگیم پر از آشوب شده جهان میل به آشوب و آنتروپی داشت این از اصول اولیه ترمودینامیک بود شاید حتی اصول اولیه وجود کارت را از دست می دهی و بعد اتفاقهای بد دیگری میافتد باد میان درختان نجوا می کرد. باران باریدن گرفت. نورا با حسی عمیق و البته درست از اینکه قرار بود همه چیز بدتر بشود به سمت یک روزنامه فروشی رفت تا از باران در امان بماند. درها نورا هشت ساعت پیش از آن که تصمیم به مردن بگیرد وارد روزنامه فروشی شد زن پشت پیشخان پرسید اومدین داخل که بارون خیستتون نکنه؟ آره نورا نگاهش را پایین نگه داشت وزن اندوه در دلش بیشتر و بیشتر و تحملش برای او سختتر می شد نشنال جوگرافیک روی ویترین بود در حالی که به عکس سیاه چالی روی جلد مجله خیره شده بود، متوجه شد که در واقع خودش همین است. یک سیاه چاله، ستاره ای در حال مرگ که در خود فرو می ریزد. پدرش مشترک این مجله بود. نورا به یاد داشت که چقدر شیفته مقالهای درباره مجموعه باره مجموع نروژی در اقیانوس منجمد شمالی به نام اسوالبارد شده بود. تا به حال هیچ جایی را ندیده بود که به اندازه آنجا از همه چیز دور باشد. درباره دانشمندانی مطالعه کرده بود که میان یخچال طبیعی و آب دره های زده و توتی دریایی تحقیقات علمی می کردند. بعد که خارم علم هم پیشنهادش را کرد، نورا علاق من شد که یخچال شناس شود، قامت خشن و خمیدگی راوی دوست برادرش و البته هم گروهی سابقشان را جلوی مجاله های موسیقی دید که حسابی غرق خواندن مقالهی شده بود. نورا اندکی بیشتر از آنچه باید سر جایش مانده. چون وقتی داشت دور میشد صدای راوی را شنید که گفت نورا راوی سلام شنیدم جو اون روز اومده بوده بدفورد تکان آهسته ی سر آره اون دیدیش؟ آره دیدمش سکوتی برقرار شد که نورا دردش را حس کرد بهم هم نگفت که داره میاد خیلی اینجا نبود حالش خوبه؟ رابی مکس کرد نورا قبلا از او خوشش میآمد. رابی هم دوست وفاداری برای برادرش بود اما درست مثل رابطه نورا و جو بین نورا و راوی هم دیواری نامرئی قرار داشت. رابطهشان بد تمام شده بود. وقتی نورا به او گفت که از گروه موسیقی اخراجش کرده، راوی چوبهای تبلش را روی کف و اتاق تمرین انداخته و با عصبانیت بیرون رفته بود. فکر کنم افسرده است. دل نورا از فکر اینکه برادرش هم ممکن است، حسی شبیه او داشته باشد گرفت. راوی با لحنی خشمگین ادامه داد، خودش نیست باید از اون خونه نقلیش توی شپرز بوش بره چون خوب گیتاریست اصلی یه گروه راک موفق که نیست البته منم همچین پول زیادی ندارم این روزا آهنگ زدن توی میخونه ها خیلی به صرفه نیست حتی وقتی قبول کنی دستشویشون رو تمیز کنی تا حالا دستشوی میخ رو تمیز کردین او حالا که قرار ثابت کنیم کدوممون بدبختتر باید بررزت برسونم که به منم خیلی خوش نمیگذره. رابی صرفه همراه با خنده کرده. چهرش لحظه سرسخت شد. مشکلات هر کسی از نظر خودش بزرگترینه. نورا حوصله این را نداشت. هنوز داری به خاطر گروه هزار تو میزنی؟ برام خیلی مهم بود. همچنین برای برادرت برای هممون با یونیورسال قرارداد بسته بودیم همه چیز توی مشتمون بود آلبوم، آهنگ تور اجرا آگهی های تبلیغاتی میتونستیم الان مثل کلت پلی باشیم تو که از کلت پلی متنفری؟ منظورم چیز دیگه ایه میتونستیم الان توی مالیبو خوش بگذرونیم اما کجاییم؟ بیتفورد بنابراین نه برادرت آمادگی دیدن تو نداره توی اون مدت همش حمله های عصبی به هم دست میداد. آخرش همه رو نامید میکردم. به شرکت که گفتم بدون من با شما قرار داد ببنده. قبول کردم آهنگاتون رو بنویسم. تقصیر من نبود که نامزد کرده بودم. با دن بودم و بودن توی گروه موسیقی رابطم خراب میکرد. خب آره، حالا اون به کجا ختم شد؟ راوی، این حرفت عادلانه نیست. عادلانه چه کلمه قلومبه زن پشت پیشخان مشتاقان آنها را تماشا می کرد. گروه های موسیقی همیشگی نیستن. مثل یه بارش شهابی خیلی زود دورمون می گذشت. ولی بارش شهابی خیلی قشنگن. بی خیال دیگه. هنوز با اله هستیم مگه نه؟ آره میتونستم هم با اله باشم و هم توی یه گروه موسیقی موفق با کلی پول. موقعیتش رو داشتیم. توی مشتمون بود. به کف دستش اشاره کرد. آهنگ خدا بودن نورا از اینکه در دلش حرف او را تصیح کرد و گفت آهنگهای من از خودش متنفر شد به نظر مشکل تو نه ترس از اجرا روی صحنه بود و نه ترس از ازدواج مشکل تو ترس از زندگی بود این حرفش درد داشت نفس در سینه نورا بند آمد با صدایی لرزان حرف راوی را جبران کرد مشکلی تو همینه که بقیه رو به خاطر زندگی مزخرف خودت مقصر میدونی راوی انگار که تو گوشی خورده باشد سری تکان داد مجلش را سر جایش گذاشت میبینم دو را. در حالی که راوی از مغازه بیرون میرفت و زیر باران قدم میگذاشت نورا گفت به جو سلامم رو برسون لطفا نگاهش روی جلد مجله گربه شما افتاد یک گربه مونارنجی و خددار احساس می کرد، ذهنش مثل هم نوازی و تقیان شلوغ و پرهیاهو شده. گویی روح آهنگسازی آلمانی توی سرش گیر افتاده و دارد آشوب و تقیان برپا می کند. زن پشت پیشخان چیزی گفت که نورا درست آن را نشنید. چی؟ نوراسید؟ زن که موهای بورش را گوجهی بسته و پوستش را به لطف مواد شیمیایی برونزه کرده بود، خوشحالی و بیخیالی خاصی داشت که نورا دیگر فراموشش کرده بود. ساق دستهایش را روی پیشخان گذاشته و به جلو لم داده بود و جوری نورا را نگاه می کرد که انگار با میمون مادگاسکاری توی باغ وحش طرف است. آره! من کریان هستم از مدرسه تو رو یادم میاد شنا می کردی خیلی هم باهوش بودی یارو اسمش چی بود؟ آقای بلندفورد یه بار برای جلسه نگرفت گفت یه روزی توی المپیک شرکت میکنی نورا با سر تایید کرد خب شرکت کردی؟ من بیخیال شنا شدم اون موقع بیشتر به موسیقی علاقه داشتم بعد هم دیگه درگیر زندگی شدم خب، الان چی کار بیکنی؟ الان شغل مشخصی ندارم. خب، کسی رو داری؟ شوهر؟ بچه؟ نورا سرتکان داد. امیدوار بود بیفتد سرش را میگفت. امیدوار بود روی زمین بیفتد تا دیگر هرگز مجبور نشود با قریبه ها مکالمه ای داشته باشد. خب، دیگه، طولش نده، خیلی وقت نداری؟ من سی و پنج سالمه. دلش میخواست ایزی آن را باشد. ایزی هیچ وقت با اینطور حرف های مسخری کنار نمی آمد. اصلا هم مطمئن نیستم که دلم بخواد من و جیک مثل دوتا خرگوش افتاده بودیم به جونه هم ولی خب بالاخره موفق شدیم. دوتا کوچولی شیطون داریم اما میارزید میدونی چی میگم؟ احساس میکنم کامل شدم. میتونم عکساشونو نشونت بدم. سرم درد میگیره منظورم وقتی که به گوشی نگاه میکنم. دن هم بچه میخواست. نورا اصلا خبر نداشت. فکر مادر شدن وحشت زدش میکرد. ترس از افسردگی امیقتر نورا حتی از خودش هم نمیتوانست مراقبت کند. چه برستد به دیگری؟ پس هنوز بدفورد زندگی زندگی میکنی؟ فکر میکردم تو تنها کسی باشی که در میره. برگشتم. مامانم مریض شده بود. آخی متاسفم. الان که حالش خوبه بهتره دیگه برم اما هنوز داره بارون میاد نورا در حالی که از مغازه فرار میکرد آرزو کرد که پیش رویش هیچ چیز نباشد درهای متعدد تا بتواند یکی یکی از آنها بگذارد و همه چیز را پشت سر بگذارد